یهو اینا و در تو مسوالا و اشارات مولانا. الله هم یعنی شد ما بعد از اینکه روایات متعرض شدیم از که لازم بحث برای اینکه انسجام درس پیش بشه متن بحث رو کتاب خود مکاسب مرمون شیخ قرار دید هر در مسئله چهار که در قسم چهار دمون افراده غیبت رو متعرض شدم فهمدن غیبت حرام هم, هم هست و عدده هم که من تو ذهنم که من عبارت رو دیدم تقریب دیگه اقلو اجماع چرا از خبار کلمات ایشان شان علومی شه؟ اذهان ای آیات رو ایشان و قد از ایشان نرفتن اجماع رو از کلمات استدلال میشه اما اینکه چرا هر قلبی باعث میدونه و زشت میشونه این رو ایشون ظاهرن شیخ علوان ان یک دو نقطه نوتر فیما بعد میاد که شاید اونجا متعرض بشه ان شاء اون وقت ایشان انشاءالله مرحوم شیخ متعرض ایده از قادم روایات میشه دیگه حالا میل بکنم قضیه روایات که شیخ در اینجا آورده رو روایت ضعیفه است چون اصلا رو توضیح دادم انشاءالله کامل مایید کنن سند واضحی نداره البته ما روایته صحیح هم داریم اما این این که شیخ در اینجا آورده اینا باید زعیف مردم استاد به اصدار در این مصباح فقاهه از سر بچه چه نگفته استاد بچه چه و در حکم ال به حرمت ها ایزم لکن ها من به مخاطب به و حد کرده چون ظلمه برای او و سزار ای اون این ظل چون ح بر به قو ظور بر از که ما ما رو برهای صحبتی میکن. اما راجع به آیاتی رو که بعد برن بر موش مترس ایده از آیات میشن که مثلا وارد شده، ما این اینکه در خواهد آمد تشریص ها، اون آیه اول رو که در سوره گجراته فهم آیهش همینه ولا یختر بعضا کن بعضا همبته در این آیه مبارکه در سر آیه اول اینه یا آیه هدرین آمن اشتنه بو کفیر من اول اونوان آم اینه و اشتنه بو کفیر من اول اینه با همون نه اخمو ولا تجسسو بلا یک ضرب ازقوم بحثه که از این تعبیر آیه معلوم میشه که تجسس و غیبت تقریبا از یک بابن و اینا از باب سوء ظن ده و باب سوء ظن در جامعه علای اله این را که به این مطلب البته بحث برد که از صحیح اول سوال شد در اونجا مطرح میشه ان شاء وقت پس این کلشه لایختر در خود قرآن ذکر شده هم مرحوم شیخ و هم مرحوم مصطاب و اده زیادی از مخصص دادتون بکنم داره مگر با خودماشون رازی بین که آیه مبارکی ایوحه با احد و کمانیت در مرخی رو میکن فکره که این چه تشمیری شده که حرمت به اصطلاح غیبت غیبت مثل خوردن گوشت میته برادر برادر اصلا گوشت شد برادر مثلا انسان رو برادر خودش رو حالا برادر دیمی دارد بخواد به به اصلا بخواد لرحال در لرحالی که میته هست نه من سالم سالم شده چی که من شده داردی میتش من شده شده بیشتر علیوه با حدو کن بعد ایشون یک توجیهاتی کردن من روشه تو که بعد از اجمالی می‌کنه اون چه که الان پروژه به اون آیه در اینجا وارد حساب کرد ظاهرن اینه که در این آیه مبارکه مسئله در که در این آیه مبارکه مطرحه یه مسئله عرفیه یعنی به اصطلاح یک نقطه اورفی هست. یعنی این که آیا موارد ولی یاخته بعضو کن بعضا، منم میشه با نظر از سر استاد شری خودش ارتیا یک مفهوم اورفیلریم داره این مهمه. چون در آیه موارد خودش ولی یاخته. من مثلا مثلا هر محله کن خم. منم میشه اصلا خود این هیئت هیئت با به که در اینجا آمده، داره یک معنا با قطع نظر است هم ولا این اختیاب البته اختیاب مستر قیبت اسم مستره مثل توضعه که مصدر وضوع اسم مصدر حالا بعد عرض میکنیم که اشاره اجمالی ما بین فرم مستر و اسم مصدر این افتعالی که اینجا شده حیات بابی افتعال یعنی انسان سعی کنه اون که به اصلاح امره پوشیده ایست پردری کنه باز کنه لایختر به دنبال امره غایب باشه لایختر به دنبال امره نباشه بعضا کن بعضا ظاهرم اینشالله می کنیم این غیبت و غایب بودن ممکنه به لحاظ شخص باشه ممکنه به لحاظ اون فعل و عمل باشه عملش غایبه مردم خبرنازی یا خود شخص غایبه قد شرس الان موجود نیست ما مطلبی رو بخواییم بگیم و ظاهرن این طوره که در قایه مبارکه دو تا از کارهای رو که امسان انجام میده متعرض شدید که دنبال فریدی اخته و تجسس بکنه و پیدا بکنه اخبار رو سرگی رو دو این که اون برستا اون در قیبتش مطلح بکنه ولایختر شما این کار نکنید در غیبت مفرح نمید ظاهر آیه مقاله مفهوم عرفی داشته باشون مثل حلالا به وحیده ما باشیم ظاهر آیه مقاله که وحیده که معنای منعی توش باشه ظاهرش یک منعی به اسطلاح عرفیست و در عرف آیه این باید واقعا این در عرف, عرف اقتابه بود این که مثلا می آمده یکی به چه معناه بوده اینشالا بعد ارز میکنم این راجعه به این بسیار بعد یه مقدار راجعه اینجا مرحوم استاد در این جلد مصبار فقه جلد یک سفیز ریش در راجعه به تحضیل تشفیح که در باید شد که فعلا فعلا فعلا بخش اینجا نیست و اما مرحوم شیخ هرسایی بعد از الله سره بعد از این استدلال هایی که پرمود متعارض با دین آی بولکه متعارض آیات دیگه هم شدن دروش یکه تمام که آیات مجموعه آیات اینا که اول لا یافتا خیلی واضحه لایخت یافتا برز هم ناز در آیه همزه و لومزه و کل همزه و لومزه متعارض اون آیه شدن متعارض از آیات شدن که دلاره که به حرمت غیبت بکنه از سری معلومه کی روانی در هاشی خودشو اشکال میکنه به درستی این آیات مربوط ماست داده میکنه بعد نیست اونا یک تذکری داده بشه یکی لایو به بالا و جهر به سو امنالقابه بله اما صکه با آیه که لایو به بالا و جهر به سو امنالقاب گفتم سو امنالقاب یعنی سخن زشت و سخن بد و پلی این شامل قیبت هم میشه مرمو مستاد بین اشکالی کردم وفی اولا لیت فلآیه مایدون و علا اندر ویبته من الجهر به سو الا به خارجیه از کردم من این اشکالیشان بارد نیست چون وقتی دارم آیا لایه تر بحض کن بحضا اصل قیبت مثل تجسس ای او این ابرو ارفیز اینطور نیست که با تصرف شارع بگیم بله ممکنه شارع یه تصادفی در بکنه یا به نقیصه یا به زیاده لیکن اصلش غرفیه اینه که ایشون میفرمان الا بالغراران من. نه انصافت. مخصوصا که ایشون قبول کردن که عقل حکم میکنه که قیبت قبیهه اگر قیبت به حکم عقل قبیه شد موضوع آیه محقم میشه دیگه جهر به سو انشاءالله خواهد آمد مراجی باید بیشه است و فرکتونه تو استثناء چون خواهد آمد کسی که مظلوم شده میتونه سپات ظالم رو پشت سرش بگه که این به من ظلم کرد چیه این و چی رو کرد ولو اون طرف اینا رو مصطور بوده شده الا من ظلم اون میتونه بگه که انشاءالله عرضم برد بعد و ثانیه لا یستفاق دارن هر تحریم به ان ادب محبوبی عام و منحو و بنظر کلا و این مطلبی که در آیه مبارکه ان الله لا یتقول به سوء نطق چون نه بحث نشده اونی که بحث شده اینه که مثلا ما در ایده از روایات داریم که ائمه میخوان لا به بگذره لا مثلا او به انچه الهی این رو تعبیر دارن اونجا بخصوده که لاغوه بول معنای تحریمه یا عرم از تحریمه شامل که راحت میشه لکه ما یه توضیح رو سابقا چند بار امت کردیم ما چون معتقدیم که خود و حکم یک مبادی داره خود اعتبار قانونی یک مبادی داره مبادی و حکم رو سه مرحله گرفتیم مرحله اول ملاقات و مساله و مفاسد این چون اینجور بحث نشده ما یه مرزدادی اونجا توضیحات داریم مراد از ملاکه در اصطلاح در اینجا یک امور واقعی هستن لیکن شما به واقع نه به نظر واقع نگاه بکنید مثلا پس میز به میز نگاه نکنید که خودش یک مثلا چوب از آهن آهنه چجوریه شکلش نه به میز به چشم یادیم به واقعیتش که زمینه حکم در شده بیاد خود دفت مورد از ملاقات اون واقعیست که زمینه ساز و حکمه یعنی مثلا فرس این میز یه جوریست که فرس این برای افراد مثلا ازامورده یا برای افراد مستحبه یا برای افراد حرامه این اون از این دید شما اگر امور واقعی رو چونه از کردم این مرتبه حکم و حیدناست بررسیتی بازوانی نشده این احتیاج به بررسی برکاتیش اینجا نسمه پیدا اشاره میکنم مرحله اول به همین اشاره که گفتان کدن اکتفاق کنید، مرحله ملاکات ملاکات یعنی امور واقعی لیکن از ظاویه صلاحیت برای چهل حک و ترکیب آسان این از این ظاویه چون شما است که به اشیاء از فی نفسه میگاه این همه رو خالفیس خواهیم خالف واقعی است. فی نگاه بوده همه واقعی هست لیکن اگر شما به واقع نگاه بکنید که زمینه یه بکنه این رو ما اصطلاحاً ملاکات میگیم و مرحله بعدی مرحله حب و یعنی مولا ترقه همون ملاکات بر او حب میاد میخواد و مرحله بعدی سبونشنا همه قبلت کردن مرحله اراده و کراحته البته اراده کراهت در حقیقتش اراده کث تقریبی است، چون مسئله مقام مقام جعله باید تبدیل بشه به اراده تشریعی. چون امور اختیاری باشه. بلد. یعنی چه؟ بسه؟ عوامل اعتباری؟ عوامل اعتباری خارج از باب مناظره توش بحث ریبا از این... این قسمت یه پیله ریبا بکارد برای این حلال این حرام ببینیم حوامل اختباریه این چیز شازیه نباید مایدو تو بحث قوانین پیش رو کشیم حیث قوان بحثه قوانین بین زندگی حالی که این برای اختبار بسید توی اختباریم برای اختبار ما, ما نباید حوامل اختباری رو اصلا بیاریم توی حصول گاهیم پیش مردیم اصولاً من عرض کردم حقیقت بحث‌های اصولی اون کلی یاده مورد واحد بیا شما در زندگیتون تا با کسرتون چند بار عوامل اختیاری به کار می برید طبیعی نیست عوامل اختیاری کمی نیست اینی که در بعضی کتب اصول آمده یار مثلا واسه در کیفای بوده که حکم اون خیلی جاش نیست مدارش آنی و اختیاری اینا لا یعبر یعنی, یعنی دور کرد در موضوع مثلا مناسب نیست محسوب یادت خب مرحله سوم اراده و کراهت که بعد از مرحله سوم مسئله جد پیدا چون اراده کرد و ما هنوز توضیحات شرعی متناسبش رو بررسی شده و ما عسکر ما یه مشکلی داریم در مجموعه ادله شرعیه چه کتاب چه سنن حتی شاید مثلا بعضی ها که از پیغمبر بعدش حتی ممکن از صحابه باشه گاهی اوقات خب اونی که الان در فقر اونی که متعارف در قانون اونی که شما الان بس که تو مجلس شورا قانون موضوعی رو کنید اونی که متعارف همون مرتبه جهده شما در قوانین مجلس شورا اشاره به مقامات ملاکات یا به مقام حب و یا اراده و کراهت نمیده خب درکت بکنید این اصول قانون گذاری اینه یعنی تو اصول قانون گذاری اون مراتب مندنه مراتب هست تو اصول قانون گذاری در مباحث قانونی همینطوری در کتور مربوط نشی خود نصور بلقبانی ما غیر از خود قانون یک ótιیش هم اون تبیر قانونیست اون قانونی باید رو قانونیست تو ادبیات قانونی اون مراتب مبادی و حکم نمیاد خود رو حکم اواسه بگی خراب نکنی هر مرحله کن میگه خود بوده تو ادبیات قانونی شما هم اگر فرض در چه بودی که جلب قانون بکنید اون مبادی رو ذکر متعارف متعارفینه مثلا قانون اینطور شکل داره البته ممکن شما بگید من در فرض مثلا در عنوان شخصی خودم با بچه ممکن مبادی رو بگم بله این میان نمیخوام منکر بشن اما اون یک به طور قانون متعارف در روح قانون مبادی ذکر نمیشه، مبادی هست، واقعیت داره، مندمه به و غلالی مثل زمیر میمونه، مثل لاشعور بقوله، عرب یا در اصطلاح آقای مرسولی ها علم اشمالی ارتقاطی. یک نحوی ارتکاز هست، اما تصویر نمیشه، این طبق قاعدشی. لکن در مجموعه عدله ایمان، چه در کتاب و چه در سنه این سه مرتبه گاهی میاد خوب دقیق بکنیم این که آلخوی میفرمانی که عدو محروبی احمه میخوام این رو تحلیل بکنم مشکل روشن شد ما توی هم قرآن و هم توی روایات این سه مرحله میاد مثلا این اراجال قبامون احلال نسا این مخنوانونی است اراجال قبامون احلال نسا لیکن وقتی من میگه به ما فضالالا بردام الابر این ملاتی به ما فضل الله این مرحله ملاک خود دفت به ما فضلالله به الله مرحله از که آمده این فضلالله هم لذا ارز کرده این تکریمیه نقطه شه ارز کرده بزن. چون موادس مزهنه نشده ایک کسی توضیح بده و لذا هم توقع نده شده آقا چون خیلیشو خودمون به طور از کسی دیگر به ما فضل الله و از ما حلابت این منحاش یک امر واقعی است این که مثلا مرد دارای یک قدرت خاصیست و یک خاصی داره در زن نیست خب یه امر حکی نیست که این امر تکلینی رو آمده زیر بنا و ملاکه برای تشریف گرفته برای عمر جان گرفت گرفته کنیم و لذا عرض کردیم عمر تکلینی در ملاکات همون ابر تکیه می‌شله که اذیابی که میخواد بهو برش بار بکنه از این اذیابی نگاه. پس ما مثلا ما ما را که به بزرگلم در این از کرد مثلا بعضی هم است که مثلا, مثلا از دم تصوری و مثلا منافی با آیه سما ما بود خب اونجا ما این توضیح رو از کردی و ما را که به در عبید اگر باشه مقام ملاک مقام جرل نیست و بکی به زلامه یعنی از این جزو مقامات جرل نیست و توی مقام جرل اگر این ظابطه رو که درس کردن درست باشه جزء امور تکریمیست نه جزه مساله رو مفاسد نه تا آرز اصلا فهم نسته کاری به تا آرز نداریم و ما رفت که به زلامه در حبیر کنیم دائما اینه که یک عمر تکوینیست نه از زامیی که میخواد روش حکم جهر بکنه خوب ده خوب ده. آیا و ما ربو که به زلاغ مندل عبی و حسب فهم و عرفی این میخواد بگه من اگر قوانی برای بین زن و مرد قرار دادم حتما باید با هم فهم رکنم بین کافر و مسلمان قرار دادم مثلا دیه کافر مسایف بشه با دیه مسلمان و ما ربو که به زلاغ مندل عبی دقت نمی این مباحثی عرض کردم یک مقداری این مباحثهونم خیلی مبهم تو کلمات عامه هست چون عرض کردم عامه سعی کردن از آیات مبارکه بیش از اندازه استفاده بکنن این خیلی نکته دیگونه چون به واژه کم دارن سعی کردن در خیلی از ابواب فقه به آیات مراجعه کنن و فائدخالی بیش از اندازه میشه خب ببین من بحثینه آیا و ما با که بزدیم که جل که نیست که خیلی واضحه اگر از بنابشه باشه تو مقام ملاکات مقام ملاکات عبارت از امور واقعی. نیست که نازره به مقام جل اگه این تفسیر قبول میده شون تفسیر قبول نکنیم اون بحثی دیگریه چون ارز کردنیم بحثیر کشونگم نایین فرمون نشته آیا تو این فرمون نشته اینجا میبینی کار بویی خیلی مجمن مطلی رو پرمیدن ما اگر بگیم ماربکه به زردان منزل عبی یک امر واقعی است، لكن زیر جعل نیست. ناظر به مقام جعل نیست. پس میشه امر واقعی نه ملاکات. ملاکا امر واقعی که زیر بنای جعل. این نکته مهمه. یعنی اگر کار در اکرم فرمودن من با مثال میخوام بگم پیغمبر حکم فرمونه دیگه ای زمانی میکنه نمیگه این جهل پیغمبر خلاف اون آیه بود و ما بود که نوزن به خط نمیگه این تشریلی که پیغمبر کرد خلاف اون آیه بود که ما ربوته به اگر پیغمبر توی اون کافر و دیگه مسلمان فرم میکنه نمیگه این خلاف اون آیه بود و ما ربوته به لا ال servid اون تحلیل نقطه شیه. از این این هر قومت هم داره پس که مثلا در همین محصه دیه ابن حض به آیه مبارکه کارم مومن هم کمن کارم فاصل هم لایست هم دیگه این آیه مبارکه تمثب کرده میگه مومن دیه داره کافر اصلا دیه نداره لایست هم و یک آیه دیگه ما جلد مومن کم کافرین یک آیه هست مضمونشی هم خب میگه نمیشه میشه رو مثل کافر نرابدید پس برای مومن دیه هست برای کافر دیه نیست ما اونجا هر اینه که نه این آیر دلاته بر تصافیح میکنه، نه اون آیه دلاته بر من میکنه. اصلا این سنتا آیاد تو مقام جهر که نیستنه اگر باشه تو نه آن ملاقات دقت رو الان برای شما مثال دارم ارجال قوامون اول نسا این ارجال قوامون کرده به ما حد الله و بعد از این ملاقش دنبال او دنبال آیه ملاق آمده خب، این خیلی واضحه نه اینه که ما که ذوالجلال و العظیم در وصف ملاقات مثل هم همون جاست به ذهن من نه امر واقعی است نه که جلی اختیاری باشه امر حقیقی است و واقعی است واقعا کافر و مؤمن سواء نیستن واقعا همینطوره اما این ناظر به این نیست که ایو الناس حالا که هم گفتم کافر و مؤمن مساوی نیستن بدونید برد فاهم گفت این دیگه داره و اون نداره خوب داره. این, این زرافت کار اینجاست. این بحثا را خیلی خوب به پیگیری بکنیم چون ما تو این بحثا میتونیم در دنیای اسلام با اهل سنت مناظره و محافظه داشته باشیم. این دیگه اختصاص داره باید من. پس یکی مقام ملکاته. یعنی مشکل ما در حیقت این رسی ما در برحان کریم آیاتی داریم که ادعا شده این مقام ملاقات م آیاتی داریم. خب خوب آیاتی داریم که خب ظاهر در ملاقاته نباید ادعا شده باشه که خوندیم آیاتی داریم که ظاهرش به مقام حب و بوز میخوره این نولا با توابین و یوحب باید متطهریم خب دقیقونه توش حب و آمده اینه که آقای خوبی میپرمونه که تحریم حب احمه از تحریمه چون یوحب باید متطهریم خب تهارت که واجب می از که انسان پاک پاک و تمیز نگه بداره پس این خوب که در استعمال می این اهم از به اصطلاح وجوب و, و استقبابه یا اهم از تحریم و کرامت لایوه قلال جهر به سو امنال بور این اهم ما یه پس یه مشکل کلی داریم و اون مشکل اینه که سه مرحله که جز مراحل مبادی جهرم در لسان دری به کار برده شده تو این سه مرحله چون نمال جهلنیه مبادی جهلن ما از این سه مرحله کدوم جهل رو در میاریم مثلا لا يوهب الله الجهل سو ابن القوم ازش حرمت در میاریم یا هم از حرمت که برم این لا يوهب توابی و يوهب المتطهری این يوهب المتطهری در یک قسمتی مثل لا الله به توهور وجود در میاریم در پاکیزگی مطلبه من هم استحباب در میاریم بگیم این یورد با اعلم از وجوب استحباب روشن شد چه نکته پنی کجاست و چه زاله یوریدو دا به تومالو یوس ولا یوریدو به تومالو اوس یوریدو لام لیوتحرکم ببینید در ذهب آیتی همون یوریدو ببینید پس ما یک مشکلی بریم در قرآن نه هم برهن. در شدید متن‌ها در روایات هم هست ما روایاتی داریم که یا آیات مبارکه الله اعظم در مسئله که اینها به استقرار معروف به مبادی جهر می‌خوره وقتی مشکل کجا مشخصه ما واقعی که برنرفتن مشکل این میشه که ما از این مبادی جهر کدوم جهل رو خود استفاده بکنه لا یحب الله الجهر به اهل القوم این جزو مبادیه. مبادیه این درمیان حرمت الجهر به سو ابن القهول یا میاد به اصطلاح عدم محبوبیتی که شامل شراحت هم میشه اصلا میشه جهر استفاده کرد ها از همه تو. اصلا میشه جهر استفاده کرد چون جزو مبادی هم میشه جهر استفاده کرد در حمدی هست چون ما از کردیم دائماً و عبداً این رو دقت بکنید ما میلیان های کلی در قانون گذاریم میلیان بسیار مفیدی در قانون گذاریم هر حکم تا به مرحله جهر نرسه موضوع احکام جزایی نمیشه این ضابط کلی ذهنتون باشه یعنی حکم وقتی در بیاقی اعتبار اعتبارت قانونی تو بیاقی اعتبار واقعیت تیدا میکنه نه واقعیت خارجی تو هم دعای اعتبار این میشه حکم و آثار حکم برش بار میشه و مراد از آثار حکم یعنی مثلا فرض که موضوع اعتبارات قانونیست مثلا فرض که آثار چیزی که زیگه نماز خونده خودا ثبت شده حکمونی که زیگه نماز خونده آده حکمونی که اهلا این رو برام به این خوب دخل کنیم آثار نقطی بر اعتبارات قانونی بار میشه که به مرتبه جهد برسه بلکه بالاتر به مرتبه تنجز برسه تا به مرتبه تنجز اینگه جل بشه ابلاغ بشه به مکلف برسه اون بر موضوع آزاد میشه. خب این هایی که اصطناب میکنن اون دقل کرد اینجا مشکل اینه به مجردی که گفت یوهبو یا گفت یکرهو یا گفت یوریدالله یا گفت لا یوریدالله آیا این به مرحله جعل می دسته یا ما این بحث رو مطرح کردیم سابقه رو که دو حتی دیگر محصر کردیم خبتیم انصاف قضیه فعلت بنایه علمان و حتی در روایات این به مرحصت مجموع این هست که گاهی آیاتی که ناظر به مبادی جعله این باید بحث جلاغانه بشه متاسفان نشده این بحث. آیاتی که ناظر به مبادی جعله در طرفه دینی ازش خوب ملزوره رو گفتن نکته حالا یا استحباب یا وجوب همین این لایه با تواوین بنابر مشهور می‌گیم الان اگه شما می‌دیدین مشهور بین فقها ما این است که توبه واجبه نه که مصبه یعنی یکی از وظایف انسان این است که اگر خدا نکرده گناه کبیره ای را انجام داد حتما یکی از تکالیفش اینه که توبه کنه از خود گناه کبیری طبیعه دیشه سقیره نه انتشتن با کبار ما تنها نه نکفره هم کنم سیادی سریره اینطور این اما کبیره اینطوره. در باب کبیره به این صورته که کبیره به اصطلاح لا تو کفر الا به توبه و این توبه واجبه خیالا طب... نگاره مثلا آیه باره که نمایه با توابیر مستهبه علایه کبه ماکان زوایید کلمات فقها چه سنی چه شیعه و حتی برایس و مجن در روایت‌ها اهل این طوری که از همین مبادی جعل اثبات جعل هم می‌کنند یعنی به عبارت دیگر این یک نوع ادبیات قرآنی است یک نوع ادبیات نه اینکه یک مطلب قانونی خاصی باشه یک نوع ادبیات قرآنی است برای بیان گاهی بیان مبادی آباد میشه، تو تعبیر قانونی یک نوع بیان قانونی است. این آیات نه لازم نیست سفره یا یا یادرانی که اون من لاخو گفته نشد. چه تشقیق هم, هم, هم, هم دیگه. اصلا تو ادبیات فقهی با تشریح برمی‌گردن. نبود بشن بلافاصله بگم. راست نیست اصلا شود موادی که در مجلس هست، متوارض نیست دنبال بلاصاف یا دنبال حقوق هست. ما خب اینو ببینیم، ارها در قواعدی اینو خوب دقت بکنیم اما در قرآن اینجور نیست این سوال سؤالی در قرآن اینجور نیست در قرآن گاهی اوقات با تعبیر ملاکات و مساله اثبات خود رو بکر میشه لوگان اشوقه علاقومتی لهم هر توان به سبات یعنی سبات اینقدر مسلحت داره که اگر سخت نبود نگوستیم باشه خب از همین رو از اون بارکه اثبات استفا... استفا... که نه استحبار معکل سبات خوب همون چید پر؟ یعنی اینقدر این ملاق داره فقط چون مانعش مشققه اگر مشققه نبود لعنه زمان به سوا یعنی این یک ای نوع تأبیر قرآنی یک نوع تعبیر دینی است اسلامی که گار یوقات از ملاقات صحبت میکنه که مراد جهن بکنه گار یوقات از مبادی از صحبت میکنه که مراد جهن بکنه خوب دقت بکنه ما چون در اینجا عن جهر به سوه به هست انصافا با این قرینه لایوه به معنی حرمت خواهد شد احتمالی چون خب این کلام مجموعه کلام رو حساب بکنیم مجموعه این کلام لایوه بولاه و جهر به سو چون خود سو آمد به نل این مشعره به حرمت جهره به سوبرنه قوله نمیداریم مقدراتی پس این واضح شد یا نه پس و اون نقطه فرمی فرمیش یک است در قرآن گاه یو مبادی میان مبادی میا رو خود رو بکنه اینو خیلی بگیم یو حبو خود رو بکنه آیه ملاک تشکیزش از کرده به سلام نهبه مثلا الجهر به سو امنالخور که خودوی موضوع قرفی داره دیگه کلماتی که اقوالی که خوب نیست زشته پلیده از سو امنالخور یعنی کلمات و سخنان پلشت و پلید خدای رو دوست نداره این که بگه خدایی دوست نداره من رو فرمه. نه اینکه منتظر یعنی به عبارت دیگر با همین که اله گله و جه و تو آیات زیادی آمده فقط اینجا نیست این خودش تعبیریه یعنی به عبارت دیگر ممکنه شما در قوانین این تعبیر به کار نبرین مثلا شما اگر تو مجلس قانون تایید بکنید یا در دنیا کنند این تعبیر به کار نبرین خدا چید. چیزی چیزی دوست نداره این تعبیرش شاید به کار نبره که این تابعیت قانونی نیست این جزو ملاقات، جز مغزی اجراه، خود جرد نیست. میلیاردی که تقریبا می خیلی نمیادم. میلیاردی میفهمم تقریبا موبه نمیادم. آن ماست آیه داریم که میگیم آیه اماده نه بیش از میلیار نیست. داریم. نه. آیه شده. بعد یه مان پنجاه تاش میتونیم می اتفاق داشته میگوییم پنجاه تاش نمیتونیم. نه. بعد شد چیه شیه. بعد شد مایوس شما که اینها ها اون وقت معیار اگر این مطلب اجمالا عبور شد همون مطلبی رو که بزرگان ما گفتن مثل از قدیم سنیشی هم گفتن که اگر جای عمل بود حمل اگر که هم بود هم به بروجود بشه، مگر قرینه برخلاف باشه اون وقت بیار که همینو بگیم بگیم هر جا لایو حب بود اصل اولی خرمته مگر از مجموعه شبانه در بیاریم از خارج که مراد کرد یا اگر از کارهای جنب بیاریم که اینجا لایه بود، جهل دوباره پس یک هر جای یود بود و لایه بود، هر جا یریدو و لایریدو بود، اصل اولیش اینه که ناظر به جهل باشه. دو اصل اولیش اینه که یود با نظر به وجود باشه، لایه هم ناظر به واقع باشه. الا ما خرج باشه. اینم شما پس ما هر دو رو اینطور بگیم ببین این از خصائص قرآن از خصائص رسول الله و و اون خصائص اینه که تعبیر به مبادیی که میکنند میکنن مراد خود خودشه. و در همین صورتی که من عرض کردم این یک نوع ادبیات قانونی است. خوب دقت کنید ممکنه ما معتمد باشیم که این ادبیات قانونی الان در قوانین پیش بشر دو معتبر نیست. مشکل نداره تحبیر قاملی از زمان تظامن فرمو کن یکی از ادبیات بیات قاملی قرآن اینه تعبیر به مرادی جهر میکنه و مرادی مبضی... جهری خود شهر بیان عذابون می کنه مرادی یکی از ناشون عرض کردمون بیان عذابون سابقاً عرض کرد یکی دیگه عذاباش ترکتوب آثار دنیایی و ترکتوب آثار برزخی و ترکتوب آثار اقربی اینه می کنه عذابا مثلا تو روایت داره که پیرانبر از اجرت میشدن فرض این داره عذاب میشه میه داره عذاب میشه تو قبل خاطر اینکه که لا عن البول ببینیم این تعبیر خودش یک یعنی یستهبل الانسان عن تنزل بلکه یک درجه ازش یک از بول. چون عذاب قدر اون پیرانبر شده این دوومی رو هم سابقا گفتیم حالا تو این بحث متعرض شدن که در روایات ما و در آیات ما این نکته هست میاد اون آثار تعبیر رو میگه اینم یک تعبیر دیگه پس یکی مبادیه یکی آثاره که بر او بار میشه چه آثار دنیوی باشه چه بحثی باشه چه آثار اخروی باشه اینم یک راه دیگه اینه مطالبی که سید در شناخت باونی خیلی موثره پس این مطلبی که استاد فردوزر که لا یسفال تحریم بله اما اینکه قیبر از جهرد سوء ابن در این چون محسن آیه کویی حرمت قیبت دا عقلی عقلانی دیگه این اشکار ایشان وارد نیست بله از جهرد سوء ابن در قوله اامن از غیبت شامل غیبت میشه اما اختصاص به قیبت نداره و من ها قولو که الاذیدون لکل همزه لمزه اون همزه لمزو به معنای گوشه کنایه زدم و تنزله البته این همزه ای زیر هم و باقیبت احمد نسبابش واقعاً بر آن بلکه ممکن است بگیم که همزه و علامزه در است که ممکن واقعی اصطلاح واقعه ثقی نباشه بیاد در جایی که واقعیت باشه من قول تا ان الذين يذكون انتشی شيء الفارشه فلذين امنوا این آیه هم توسل شده برای ریخت مخصوصی در جایی قرار حضرت و استار میکرمه این حب شعوع پاهشه بنن محرمات این شعوع پاهشه ظاهرش خود بحشاه مثلا کسی علاقه داره کارهایی رو امجاب بیده برماریزی بکنه رو روزان رو ترسیس بکنه اعلان بکنه که نستجی رو به الله مثل شرب خمر بین مردم چایه بشه ظاهر میشیم تو انده داده اینجا این لازمه به انسان اعمال انجام میده که نتیجه او شیار فاحشه باشه. مراد اینه. و غیبت و اخبار و مع الفاحشه و عیب مستور. اول غیبت لازم نیست فاحشه باشه، ممکنه عیب باشه، فاحشاب نباشه، هم مستوره. راست این اشتباه ورده. دوم که اخبار و خودش شیار فاحشه نیست. و هما متباینان الا ان اخبار منر انر ایوب المستوره به نفسیهی منر فواهش مثلا بگه این آقا انجام بده که خودی موجب اتشار فواهشی در جامعه بشی کما ها موقت در رواهات داله حالا حرمت رو هست که این اشکال رو مرگوم هایی روانی داره اما این روانی بعد قبول میکنه دلالت آیی مبارکی رو اشمالا قبول میکنه نقطیش این رواهته این آیت بود بردن بل فی بعض روایات این عبدالله علیه السلام قال من قارب فی مؤمنه این رو معموم در اینجا در ذریع آیه نه با مارعت و ایناه و سمعت و ازونا فاقون نلدین قارن الله عز وجل نلدین یا حبون انتشیت پارش وخیشون اشکال کردن و بیرد و علیه همون خروجون انه استودلال به آیه روایه نه روایت شاره و مفسر به روایه و سایی هم انهو احس و نرمده فیدنالآهی در جفی آفینه لا مطلقا و یونا فیلالآهی انهو رواست زعیم هستنه اما تایی بردن در کتاب کافی هست ابن حبی عمر اما بعد اصحاب ناهن حبی عبدالله حالا من نمیم دارشتا تو زمان همیشون مراسیل نبی عمر رو حجت نمیدرستن اواقع خوبصار این مقلب درستی است مراسی ابن عبی آمه باقید شعبی نیم کن. و هر حال این بباید به لحوه مرسل آمده البته مرسل ابن عبی آمه و خود مرحوم مقرب خود استاد را بود کنم با هر برن فوق کرد ایشون در حاشه اشنایش روحا صدود به طریق آخر و لاکبنا ها مجبورد و با جلی محمد ابن عمران حالا نمیدونیم مالا خود این ای از استاد نرکنم اصلا این روایت با همین متن در کتاب به اصطلاح نه مانی صدوب کجاست یکی از کتب صدوق فقید نیست در یکی از کتب صدوق هست همین سنده یعنی همین محمد ابن نبی اومد در کتاب کافی دارن بعض اصلاح نام جد دارد محمد ابن نمران شد مرشد طریقه آخر طریقه ابن همین ابن نبی اومده کافی اسم نورده در کتاب صدوق اسمش آمده محمد بن همران و ایشون روشه ضعیب به مجبور از تان به محمد ابن همران چون چند اختیش همه راجع به محمد بن همران صحبت کردیم من از که محمد ابن همران سه قصد که از آزم از خوابش یو مجبور نیست که شون درشه لذا بباید به لحاظه طریق صدوق طریق برامون صدوق بباید معتبر این و ارز کردیم که مرموم آیی هم اینجا قبول میکنه این آیی قبول میکنه اینده در که بودن شهر آیش رو به لحاظ این نقطه ای که ارز کرده این اینه که به اصطلاح مرموم صدو بزنید به صحیح آورده این رو قبول میکنه وقت اینجا یه توضیحی داره که وقت قوام شده و خیلی هم ناغذ صحبت با تویی که شدیم اصلاه الله عمد محمد و